منتظر چی؟ خب... تو منتظر چیه هستی؟ ناوک دارم لحظات و تجربه می کنم اگه طبق برنامه عمل نکنم بجبور میشه شه اردوگاه های کارایجباریه چی اینو تجربه کنم ده دقیقه وقت داریم اون داره منظری تماشا می کنیم یلشور نزنه من همیشه وقت شنستم خب بچه شروع می دارمش حالی شد نه چنده انگار گفتیم رو به تنجره کار درست نه نمیتونه ورودی مادون برمز رو پیدا کنن سر کن. تو کار جاسوسی چقدر سر کنی بازن کمه برافره پیداش کردی سدم به حدث همین نگیریم آماده سه دو دو یکس شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ تموم بحرد کامپیتر هست؟ نه نه کامپیتر هست کار افتاده؟ غیرموتره؟ نه تو شهر من چی داشت کردن؟ بله سال نو مبارک جناب وزیر رفا تو کیاستی؟ بیتونین فکر کنین من وجدنتونم ها فرست دادم شاید بد نباشه اگه یکم پردر نگاه کنیم ماهای گذشته شما نوت میلیون دلار از کمک سازمان ملل و خرج تکنولوژی موشکی چین کردین اون پولمار قربانیان سیل و بچه های گرسنه بود مطمئنم دولت کره شمالی اهمیتی نمیده اما مطبوعات دنیا چه واکنشی نشون میدن تا تا چه میخای میخوان فردا برگردن سر میز مذاکره با کره جنوبی این غیر ممکنه ارسال مدارک پیداشکان همین جا هست برو الو یه نگاهی به بمانی تور بندزی ها حالا که هنوزم غیر ممکن دکمه یک رو فشار بدید این کار به نفته ها خوب انتخابی بود شامی این که پیداد کردن بهتر هر چی زودتر فرار کنی بجان بین بجان بین بزمین بزمین این هم کجایی؟ بیا طرف ماشین، حوات داریم سازمان مل از نیویورک بخوام گزارش مربوط به پناهندگان رواندار رواندار آقای بخشه بخشه بخشه نظرتونو در بیرکول نظرتون رو بازگشت کره شمالی به مذاکرات سولف برای ما میگی؟ این موفقیت رو چطور به دستا بردیم؟ با عقل و منطق شکیبایی احترام متقابل و درک این مسئله که تفاوت‌های فرنگی یک واقعیت و ما بایست این رو برسیم خلی ما چکرم کل سازمان ملل پس از بازگرداندن موفقیت موفقیت‌آمیز میز کره بر سر میز مذاکرات. آلی من حالا میشم یکی از اون پاسداران صلح معروف کانادایی. معروف که نه. میدونیشم تو آمریکایی اسم کل سازمان ملل رو بلدان. صد درصد. اما همه چیز عوض میشه چون مطبوعات تو رو تحسین میکنن و حمایت سازمان ملل هم در حال افزایش اما اگه از تاکتیکای تو خبردار به دردسر میافتیم. میدونم که غیر عادیه. اما نمیتونی منکره نتیجهش بشی میدونی اگه این پیمان با چین امزا میشد سازمان ملل میتونست به یک قدرت جهانی تبدیل باشد باور کن همه خوب در ذنب فکر میکنم فعلا باید روی عملیات پنهانی سرپوش پوش حالا هم همکارت چطوره؟ چند مای طول میکشه تا حالش خوب بشه اما روحیش خیلی خوب چطور میشه به کسی که وجود نداره به خاطر اتفاقی نه افتاده میداد شش ماه بعد نگار تو رو سکار کردن صفاش بیشتر. آره حق با توئه. سلام. آ ما عذر می خوام. فکر کردم اون یکیشونه. آره میدونم. آه. تو که تر کرده بودی. آره این آخریش. این دیگه جای سیگاریا نیست. آ باشه. خب بگو ببینم اومدی اینجا چیکار مجبورم کنی بازنشسته نشسته باشم. خب راستش تو این فک بودم. جدی؟ اما حقیقتو بخوای به هم گفتن یه سری بحث. آها. اگه خانمه هوکس دلشوره منو میزنه، چرا خودش به همسر نمیزنه، ها؟ تو ها مثل من خوب میدونی خانمه هوکس هیچ کاری نمی کنه مگه اول یه سری اطلاع راجب به شموبری کنه یعنی <تصفح> تو فکر میکنی صلاحیت و آزمایش منو داری؟ خب چون اوزاد روبرانیست، فکر کنم بتونم حالتو بگیرم <تصفح> باشه <تصفح> خلی خوب، من حاضرم سود باش، سود باش، شب میکنی یا دریپ میتونی <تصفح> بازی کن چون کن. حالا؟ <تصفيق> اه <تصفيق> اه <.دة yours>. <تصف> <تصف> اه اه آله بسه بهتون حالا اه اه اه اه اه اه چه گنده زدن باق اه حالت خوبه؟ چیزی نیست متاسفم ای بابا پسر خون کردی که نه نه نه نه نه سبکم بزد ببینم او در خون میاد اه آ او رر رر رر اتش به 5 سانتی داری. تموم شد. هراستور 7 سانتی متر نشون میده. متشکرم. امم. 5 سانتی متر نه، یا. وگرنه با گناه اینا سس کونان بکنی. چطوره؟ آها، تمیز کار کرده. این جماعت خوب دکتران. چه؟ آسیای ها، چینی ها زرنگو تحصیل کردن؟ خب، پس امثال منو چی میگی؟ امثال تو بعد یاد بگیرن سر کار تیر نخورن. ترتیبشو میدم. تو برای بازشستگی هنوست جوانی پس؟ آره جوانم، اما احمق نیستم. آه. <تصفيق> دستت نمی‌سوزه؟ چرا؟ فرانک؟ چی گیر آوردین؟ بیا. این روز از یه کشتی چینی تخلیه شده. مامورای تخلیه به چیزی مشکول نشدن. تا آفتاب تا بید روش. پزشک قانونی نه پیدا کرده آ من این زبانو بلد نیستم چیزی از اشار در نمیارم ما ترجمه میگه زبان ویتنامیه یه چیزایی از انتقالش توسط سازمان ملل از اردوگاهای هنگ کنگ باشه دنبال یه زندگی جدید تو آمریکا آ نهنده های هنگ کنگ ری زنگ بزن عفه ببینید بلال ببینه ارتباطی با اونایی که ما پیش گفتن داره ماله حتماً ریس بیا، با چه کرد؟ هر حرفی میخواستن بزنن خیلی رو راست زدن. بچه ها؟ فکر نمیکنی ارتباطی به کنفرانس بزرگ چینی ها داشته باشه. تا هم افراد در موقعی دازگید. خیلی خوب، تمام. شی، اندر یو اند سپاویشن. حقیقت اینه که گرچه این پناهندگان در هونکوین بودن، اما افسران سازمان ملل بر اونا نظارت داشتند سالی <تصفيق> جرواید، جو یو دیگا سویچ شما از حقوق بشر میگید اما در سمایلی اینجا کارگاه های کار ارزان وجود داره در یکمایلی اینجا ها مردم بی خانمان تو خیابونه ها زندگی میکنند ولی شما به خاطر نقض حقوق بشر کشمان ما رو سرزانشو کنید تنها حقی که برای من اهمیت داره سفیر چین جانت سبون دو روز دیگه چین موافقت نامه تجاری سازمان ملل رو امضا میکنه و از 50 سال انزوا درمیاد. نه فقط انزوای فرهنگی بلکه تجاری و در بروی یک نیم میلیارد مصرف کننده جدید باز میشه تا فکر میکنی جناب سفیر با قضیه پناهنده مرده تو کشتی ارتباطی ده؟ من تا حدودی مزنونم قبل از اینکه سفیر سازمان ملل بشه مسئول اسکار پناهنده ها بوده اینجو هم داره با چند نفر که در عمر قاچاق فعالاً ملاقات میکنه مم. قاچاق چیه انسان، تاجر برده بله، دقیقاً قریزم به ام میگه یک کاسه زیر نیمکاسه است. تو همیشه فکر میکنی یک کاسه زیر نیمکاسه است. امشب دیوید چان به افتخار ووی مهمونی گرفته میخوایی من وو رو نظر بگیرم؟ اگه آمادگی داری؟ شونت چطوره؟ راستش داغونم اونه هاش، ال من همینجا رو دنبالت گشتم. بکر نمی کلا هم دیگر دیده باشیم. هنوزم ندیدم قربان. بله، البته. یه لحظه اجازه میدید، لطفاً. بشتیم جلسه شورای امنیتو میدیدیم. اون پاک اصابالی شده. بله، دیدن. فیال نداری کاری داری مورد بکنیم؟ اون در جریانه. ما اقدام میکنیم. گمون نکنم توماس زیاد از من خوشش میاد برعکس با موفقیت سال گذشته و قریب الوقوع بودن موافقتنامه تجاری با چین خیلی هم از تو خوشش میاد برای همین نمیذارم باز نشاستیشی ببین النور من اهل شکایت کردن نیستم اما ظرف دو سال گذشته دو بار تیر خوردم شش تا از استخونم شکسته حتی بیمه درمان ندارم ما میلیاردرها دلار تو پرداخت‌های موفق طلبکاریم تمام کارکنان حقوقشون عقب افتاده بله خب پس من باید کاری بکنم که خودم عقب نیافتم هره همیشه هم. یه کار پیده کنم کار؟ مثلا چی؟ CIA؟ NSA؟ هیچ چه نیست مک دونالد آره یکیشو میخورم مگه میشه؟ آره شایدام دوتا خوب بوش کن دولت ها میان و میرن اما مک دونالد همیشه میمونه خیلی خوب آه. حرفتو میفهمم اما الان ما با وضعیتی روبرو هستیم که به سرعت داره تبدیل میشه به یه بمب ساعتی سیاسی نه چطر نجات نه مسلسل بازی فقط استراغ سهم درست نه؟ مثل قدم زدن در پارک. پف اینجا نیا یورک خانمچون با قدم زدن تو پارک هم ممکنه کشته بشی جلای معامل سازمان ملل رو بگیریدت حقوق و شردتچین حمایت کنید این معامل ایست که بهای اون آزادی تبوت زند با تبوت Ja, halt. Nicht so weit. Geschwindigkeit. Alles schön. Ich schieb der Valo Mann mir شرکت‌های آمریکایی از دسترسی انامت بود به چین امتفه می‌شن این یه چرفش اساسی در قدرت‌های اقتصادیه باید دو گروه‌ها در نظر گرفت به خصوص وقتی پای چینی‌ها در می‌مین باشه این نهایت دورنیشین شماست جناب صفیر حدودی یک هفته‌ست گیل‌چون مرمن رو ببخشید من صداشونو دادم بله بله کارت پو ملاده است داره از قضاهای شکایت کنی. مثل اینکه اناقایی به قضایی ناهیه سی توان نداره یه نفر باید نمیدونست چی؟ کلپاچه خوب دوست نداری؟ نه عالم ها آغا، از تشریف فرمایی و حضور شما در اینجا سپاسگزارم. چینو غرب روابط خود را رو نه جنگ، بلکه در تجارت آغاز کرد و این تجارتی که امشب ما را دور هم جمع کرده و در سالهای آتی عامل پیوند و اتحاد ما خواهد بود. این موافقت موافقت‌نامه کوشش‌های چندین ساله رهبران دو جناح را به نتیجه می‌رساند. با این اعتقاد که شکوفایی اقتصادی به صلح منجر خواهد شد. Marco Polo har inte hört talas om det. har har inte har har inte har har inte یک و نیم ملیارد چینی به بازارهای جهانی دست بسید که دارد به چاند چی داره میگه؟ من براقبشم برم کنید به چاند چی داره میگه؟ صدا خیلی پایینه جدا میکروفانه گرفته من باید بدونم زبط میکنم خانم ها آقایان، نمایندگان محترم سازمان ملل و مسئولان دولتی از شرکت در مهمانی امروز بسیار خوشحال هستم افتخار دارم که دروازه های چینو به دنیا باز کنم ایدم اینجی، گام کنترلی شه. بلاه. دستورچی بیا بیرون. شنیدم. درامی. رفته بعد هفتم. آره. آه، آره. کاما. یه لحظه چیست؟ راهی که هر بس اختموم؟ شریت ام تر میام. بیرونش روش بگیر. سعی میکنم. خوب آقایین که میام تر مالی. میام تر میام تر Kojai, kojai. Du vill inte? Vad är det för skit du behöver? Nej vi inte, nej vi inte. Bye. Sammo, titta på den där. Bye. Ah! Kommer jag tillbaka? Ciao, tillhör du? Ciao, یه حرکت. از راهوند. مستر فاحتوند. هندز. یالله هند. دو تا هندز. جای چه جای هونت. راست رو زاپوشه سارنت. زاپوشه سارنت. حالا زانو بزن. زانو بزن. Jag kommer här. آه! آسر می خواهد. متاسفم. اشکالی نداره. شما جولیا فنگین هستید درسته؟ من فرانکین کپله هستم. معمور ویژه ای اف صحبت کنیم؟ می فرستیم دیه هوتل پنج ستاره. مهمون اف بی آی. منو فکر می روزی چند تا علکه خوشبای نو می تو خیابون هفتاده دستگیر می یعنی با من؟ شاید بهتره بسواریم اد بچینیا. به زریم اون حال تا بگیره. این اونیس. خیر مچه کردم خان. کافتره سرامیکی دستگاه فلزی یا با خوب گویی می‌زنی. مادرکه سازمان ملل که جال کردنشان مشکله. وسایل ارتباطی پیشرفت تقریبا مثل نمونه دولتی که منیشینی که هر دمونو باستان تو یه آخر ممتنها جلوی توی اونجای بیش دریختن که بازم یعنی این که مامور سیایی هستی زد تلعت اعتدش یه دولت خارجی. تو میتونی هر وقت دلیت خواست به پری وسط حرفا من همین جوری ادامه میدم موضوع اینه که یه موشپناهنده های مرده چینی و یه سفیر چینی رو دست ما مونده و دوست ندارم یه علکی خوش به هم بگه یه میخواد جلوی این چی بهش میگن موافقتنامه یه تجارتی چین رو بگیره چه خبر شده؟ Whoa! Oh. Oh. Whoa! I don't zodiac soft but stop! I'll say you محموله رو تحویل گرفتیم از سر انگوشتشو بگیریم میخوام سربه نیست بشه بدون هیچ رد دیگی از سر That shit! به جان سفیر بحران شدت یافته است. در این اصنا اف آی در حرکتی بی سابقه حوییت قاتل را که شبه گذشته از دست ماموران گریخت همچنان مخفی نگفت داشته هست داری ایمیل تو میبینی؟ آه. بعدم بهت سنگ میزنم باش. همه چی رو به تلفن رو بست کنیم. ما گوش بکنیم سازمان ملل مللی گروه مخفی داره که سفیر چینو به قتل سونده. این خبر جنجالی این هفته میشه. و سازمان مللو برای همیشه بی میکنه. مگر این که؟ مگر این که موافقتنامه تجاری با چین مسکوت بمونه. ما قدرت این کارو نداریم. دیگران دارن ما نداریم. به هر حال 24 ساعت مهلت داریم. توقف پیمان چرا؟ کی از این مسئله نفت میبره؟ ما هم بودیم همین کار رو میکردیم حاضر به چی عرف میزنی؟ باچخاهی به کارگیری روش خودمون علیه ما تو النور. بهت گفتم زرارش به خودمون برمیگرده پاداشی در کار نیست. باید بهاش بپردازی من میخوام همه چیز فورا متوقف بشه نمیخوام هیچ اتفاقی بیوفته مگه با مشفرت من و با اجازه من آقای دبیر کن من اسم نه نه, نه. من... خوب عواسته جم کن الانور به هم بگو. بگو این مرد قتل سفیر چین آقای وو در بدترین موقعیت ممکن در روابط چین و آمریکا اتفاق افتاد مقامات سازمان ملل از تأخیر در موافقتنامه تجاری با چین ابراز نگرانی می‌کنند اما دیگران نسبت به تیره بیشتر روابط میان دو کشور نگران هستند حال تاجر موفق دیوید چان رو بهبودی است پزشکان او ساعتی قبل اطلاعیه‌ای را صادر کردند آقای چان در حال استراحت هستند گلوله بدون هیچ مشکلی خاصی از بازوی خارج شد Vi t referred upp till det vi rädd variance, U Kelley. Jag har det inte venir med inte همون کالیب که به وو تیراندازی اندازی شد آره، مطمئنم مسئله انگوشته جولیوی و هرودزم رو شد خواه، و رفیق ما به که این حجر چی ها نجات بذاریم مخوی یکیشون رو با گله سرخ بکنه و بقیه رو میفرسته برن را لسل باباشون تو کشتی نگاه میکنی ری؟ آره خب، یعنی گاگو داری چون اینم این کشتیه یعنی واقعا تیمم با اوهام، با کران با به آدمای کله‌گنده ناشناسی که شدیداً به روان درمانی نیاز Are your mail Det är en bra آه خانم فریدی، می با حرف زنم با جون حرف بزنم؟ این کار مزاحمتی. من فقط می‌خوام ما وظبتم باشه. برای چی؟ آم... رفیق رفیقه فراریمون گیر قاچاقچی افتاده. می‌دونین معنیش چیه؟ بهترین دوست من داره می‌میره. اگه می‌خواین کمک کنی برید دنبال کسی که سعیوش زندگیشو ازون بگیره. باشه. اگه خاصی به من تلفن کنین این کارت منه. جان زدام. Håller vi på någonting? jag är inte säker inte jag en att är inte از پیغامتون فران راه افتادم کدوم پیغام تو چط شده جولیا شما همینجا بمونیم Kansin! Itsina gu. واسه کی کار میکنی؟ واسه کی کار میکنی؟ قراره همینجوری اینجا بشنیم؟ خواهش میکنم بس کن نه نه فهمیدم تو چی کاری؟ چه فکر میکنی نمیفهمم به اندازه من ترسیدی دلیل اینکه نمیخوای به بگی موضوع چی اینه که خودتم هیچ چی نمیدونی خیلی خب دیگه کافیه خب؟ باشه؟ خب تو چی کاری؟ یه جور معمول دولتی؟ ای؟ اینه برای من ترجمه کن و لخ آزادی آزاد؟ که برم کجا؟ خیلی خوب دوباره بذار این که سفیر چینه آره داره میگه مرگ اون پناهنده ها یه کار عمدی بوده برای لقو محفظ ادنامه تجاری و اون میدونه کی مسئوله با کی داره حرف مزنه اون بیر رسیده. دختر قبلاً کشته شده بود. آسه همینم یارو رو نفله کرده. یا نه نفک. گزرنامه شماره چکه. تو پرونده چی چی نیست؟ مثل اون بابا. همون بام بست. اینه همون. اینه اون. نواره. شماره تلفونایی که خستیه. می دونیم یه جور ارتباطی بین اونا وجود منظورت ده منظورت غیر از اون یه دو جین دسته؟ آره ببین شماره ها دوماره همه پنج پنج پنج پنج پنج پنج پنج پنج پنج پنج پنج سه نو سه کاری که می کنی اینه که همه رو تا نو دو نو می گیری مشکوک ها رو جدا می کنی تمام محله ها رو کنترال می کنی سب می کنی ترافیق ما برسه بعد می گیریش خوب باعث شده از بسیاری به بی نتیجه من در محفظ رامی تجاری سازمان ملل اعتقاد پیدا کنند همه یه توجه ها به داگلاس تامس دبیر کل سازمان ملل محتوف شده تا بلکه راه حلی مسالمت ها برای روابط تیره ای دو کشمار پیدا کنند